بیوزنی سه تا پسر داشت. دو پسر بزرگتر بیکار و تنبل بودند. اگرچه بعضی از همسایه‌ها به احترام مادرشون کارهایی رو بهشون سپرده بودند، اما در زمان این داستان اون دوتا به قدری بیتوجه و تنبل شده بودند که ارباباشون گفتند که دیگه حاضر به نگه داشتن اونها نیستن. اونها پیش مادر و برادر کوچیکشون برگشتن و اهمیتی اصلا به برادرشون نمیدادند. چون اون شخص مفیدی توی خونه بود از مرغ ها مراقبت می‌کرد گاوها رو میدوشید برادرا اون رو به تمسخر پینکل صدا می‌زدند و کم کم همه مردم دهکده هم اون رو به همین نام صدا زدند دو مرد جوان فکر کردند که موندن توی خونه و بیکاری خیلی بهتر از انجام دادن کارهایی که از اون خوششون نمیاد بالاخره بیو زن خودش رو از دست داد و بهشون گفت حالا که تو خونه کاری نمی‌کنن باید دنبال کار در جای دیگه باشن چون اون دیگه نمیتونه اونها رو توی خونه نگه داره که آخر عمرشون رو به استراحت در کنار آتیش بپردازن پینکل به مادرش گفت که اون هم به قدر کافی بزرگ شده و میخواد به سفر بره و وقتی پولی به دست آورد برای مادرش خواهد فرستاد تا خونه رو براش نگه داره بیوزن از حرفهای خودش به سختی پشیمون شد مادر از رفتن جوانترین پسر خودش خیلی گریه کرد اما وقتی که دید اون دلش میخواد همراه برادراش بره سعی نکرد مانع رفتنش بشه به این ترتیب مردان جوان یک روز صبح با شادمانی راهی شدند و تا زمانی که اندوختهٔ اندک پولشون تمام نشد نفهمیدند که باید به دنبال کار مورد علاقهشون باشد اما چند روز سرگردانی چشمهاشون رو باز کرد ظاهرا هیچکس اونها رو نمیخواست و اگر هم میخواست مردان جوان میگفتند که قادر به انجام کارهایی که مزدای دامداران دام یا هیزم شکنان از آن میخوان نیستند. کوچکترین برادر که آقل تر هم بود و خوشحالی حاضر بود، بعضی از کارهایی رو که برادرانش از قبول اون خود داریم میکنن انجام بده. اما اون کوچیک و ضعیف بود و هیچکس به فکر سپردن کاری بهش نبود. بنابراین اونها از جایی به جای دیگه میرفتند و فقط میوه و گیاهانی رو که در جنگل پیدا میکردند میخوردن. و هر روز گرسنه‌تر از قبل می‌شدند یک شب بعد از ساعتها راه رفتن وقتی که خیلی خسته شده بودند به دریاچه‌ای بزرگ رسیدند که جزیره‌ای در وسط اون قرار داشت نور شدیدی از جزیره می‌تابید که به کمک اون اونها میتونستان همه چیز رو ببینن انگار که خورشید می‌درخشید اونها در بین نیها قایقی رو پیدا کردند که تقریبا از دیدها مخفی بود برادر بزرگتر گفت بیا سوار اون بشیم و به جزیره بریم چون حتما خونه ای در اونجا هست شاید به ما غذا و پناه بدن اونها سوار قایق شدند و در مسیر نور پارو زدند وقتی که به جزیره نزدیک شدند چشماشون به فانوسی طلایی افتاد که از در کالبه آویزون شده بود در عین حال صدای موسیقی گوش نوازی از زنگی که به شاخهای طلایی بوزی که در نزدیکی کلبه میچرید به گوش میرسید مردان جوان خیلی خوشحال شدند چون تصور میکردند که بالاخره به جایی رسیدند که میتونن به پاهای خستهشون استراحت بدن. اونها وارد کلبه شدند اما از دیدن پیرزنی زش رو که خودش رو در ردای طلایی رنگی که همه خونه رو نورانی کرده بود پیچیده بود، حیرت کردند. اونها با ناراحتی به همدیگه نگاه کردند و پیرزن با دخترش به اونها نزدیک شد. برادران با مشاهده شنل پیرزن فهمیدند که اون جادوگر معروفیه جادوگر در حالی که به دخترش اشاره میکرد که ظرف بزرگی رو که روی آتیش بود هم بزنه پرسید چی میخواید بزرگترین برادرها جواب داد ما خسته و گرسنهایم جایی میخواییم تا شب رو در اون بگذرونیم جادوگر گفت نمیتونید اینجا بمونید اما میتونید غذا و جای خواب رو در قصر اون طرف دریاچه پیدا کنید قایقتون رو بردارید و برید اما این پسر رو برای من بگذارید میتونم کاری براش پیدا کنم. اگرچه حس میکنم اون خیلی تیز و حیلگره و برام شانسی خواهد آورد. پینکل در مقابل گفت پسر بیچاری مثل من چه آسیبی میتونه به جادوگر بزرگی مثل تو برسونه؟ خواهش میکنم بذار با برادران برم. قول میدم که هرگز لطمه بهت نزنم. بالاخره جادوگر بهش اجازه رفتن داد و اون هم همراه برادرانش به قایق رفت. راه دورتر از اون بود که تصور میکردن. وقتی که به قصر رسیدن صبح شده بود به نظر میرسید که بالاخره شانس به با اونها رو کرده چون دو برادر بزرگتر در استبل پادشاه مشغول کار شدند و پینکل هم پادوی شاهزادگی کوچیک شد اون پسر دانا و سرگرم ای بود و هر چیزی رو که در برابر چشماش میگذاشت میدید پادشاه متوجه این موضوع شد و قالبا اون رو به خدمت خودش میگرفت و همین موجب حسادت بیش از حد برادرانش شد مدتی به همین شکل گذشت پنکل هر روز در دربار محبوبتر میشد سرانجام حسادت برادرانش به قدری برانگیخته شد که دیگه طاقت نیوردند با هم مشورت کردند تا راهی برای خراب کردن اعتبار اون پیش پادشاه پیدا کنند اونها نمیخواستند اونو بکشند اگرچه شاید از شنیدن خبر مرگش متأسف نمیشدند اما آرزو داشتند که به اون یاداوری کنند که هنوز بچه است و نصف اونها هم شعور و عقل نداره. خیلی زود فرصت این کار رو به دست آوردن. پادشاه هفته یک بار از استبلهاش بازدید میکرد تا ببینه که آیا از اسپاش به خوبی مراقبت میشه یا نه. وقتی اون وارد استبل شد دو برادر ترتیبی دانند تا سر راه اون قرار بگیرند. وقتی پادشاه از پوست های عبری شمی اسب که تحت نظر اونها بودن تعریف کرد و گفت که چقدر وضعیت اونها با زمانی که مهترها نخستین بار به دریاچه اومده بودند تغییر کرده مردان جوان فوراً در مورد نور عجیبی که از فانوس بالای کل به پخش میشد سخن گفتند پادشاه که به جمعآوری اششاه کمیاب علاقمند بود فوراً به تله افتاد و پرسید که از کجا میتونه چنین فانوس عجیبی رو به دست بیاره اونها گفتند آل جناب پینکل رو به دنبال اون بفرستید اون فانوس متعلق به جادوگر پیریه که بدون شک از راه نادرستی اون رو به دست آورده اما پینکل چرب زبونه و بهتر از هر کسی میتونه فانوس رو ازش بگیره پادشاه فریاد زد پس بهش بگید همین امشب بره اگر فانوس رو برام بیاره اون رو یکی از محافظان خودم خواهم کرد پینکل از تجسم این ماجرا کاملا شاد شد و بدون تلف کردن وقت قایقه کوچیکی رو که کنار ساحل لنگر انداخته بود غرض گرفت و به سمت جزیره پارو زد وقتی به اونجا رسید شب شده بود و هوا تقریبا تاریک بود اما از بوی مطبوعی که به مشامش میرسید میدونست که جادوگر سرگرم تهیه شام خودشه به همین خاطر به نرمی از سقف کلبه بالا رفت و خیره شد اونقدر منتظر موند تا اینکه پیرزن روش رو برگردوند و اون سریعا مشتی نمک از جیبش بیرون آورد و توی ظرف قذاریخت هنوز کاملا از انجام این کار فارق نشده بود که جادوگر دخترش رو صدا زد و بهش گفت که ظرف رو از روی آتیش برداره و آبگوش رو در بشقابی بریزه چون مدت زمان زیادی پخته بود و جادوگر گرسنه بود. اما به محض خوردن اون قاشق رو بر زمین انداخت و به دخترش گفت که حتما چیزی رو باید باش مخلوط کنه. چون خوردن چیزی به اون شوری غیر ممکنه جادوگر فریاد زد به چایی که در درههاست برو و کمی آب خنک بیار تا بتونم شام تازه ای آماده کنم چون دارم از گرسنگی تلف میشم دختر جواب داد ولی مادر چطور در این تاریکی میتونم چاه رو پیدا کنم چون میدونی که نور فانوس به اون پایین نمیرسه جادوگر گفت خب فانوس رو با خودت ببر چون من باید شام بخورم و در این نزدیکیها آبی نیست به این ترتیب دختر سطر رو در یک دست و فانوس طلایی رو در دست دیگش گرفت و شتابان به سوی چاه رفت. پینکل اون رو تعقیب کرد و مراقب بود که در زیر نور فانوس دیده نشه. وقتی دختر خم شد تا سطرش رو از آب چاه پر کنه، پینکل اون رو به داخل چاه انداخت. فانوس رو دزدید و شتابان به قایقش برگشت و پارو زد. اون مسافت زیادی از جزیره دور شده بود که جادوگر که از تأخیر دخترش متعجب شده بود جلوی در رفت تا اون را پیدا کنه. اطراف کولبرو تاریکی عمیقی فرا گرفته بود. اما اون نوری که در مسیر آب می درخشید چی بود؟ قلب جادوگر فورا از فهمیدن اون چه که روی داده بود فروریخت. جادوگر فریاد زد. این تو هستی پینکل؟ جوان جواب داد. بله مادر عزیز این من هستم. جادوگر گفت. آیا آدم بدی نیستی که از من دزدی می‌کنی؟ پینکل که از ترس تعقیب جادوگر تونتر از قبل پارو میزد جواب داد بله واقعا که اینطوره مادر عزیز اما جادوگر قدرتی در آب نداشت و خشمگین به داخل کلبه برگشت و تمام مدت با خودش زمزمه می کرد مواظب باش مواظب باش دفعه دوم این راحتی قادر به فرار نخواهی بود پینکل قبل از طلوع آفتاب به قصر برگشت و در حالی که وارد اتاق پادشاه میشد فانوس را بالا گرفت تا نور اون به بستر پادشاه بتابه پادشاه بلافاصله از خواب بیدار شد و با دیدن فانوس که اشعه های اون بر اون میتابید از جا پرید و پینکر رو با شادمانی در آغوش گرفت پادشاه فریاد زد ای حیله گر چه گنجی برام آوردی اون ملازمانش رو احضار کرد و بهشون دستور داد اتاقای نزدیک اتاقش رو برای پینکل مهیا کنن و اینکه جوان اجازه داره در هر ساعتی از شبانه روز به حضور اون برسه علاوه بر این به اون محل خاصی در شورای شهر بخشید. به آسانی میشد حدس زد که همه اینها بیش از پیش حسادت برادرانش رو برانگیخت اونها دوباره به فکر فرو رفتن تا راهی برای نابودی اون پیدا کنن عاقبت اونها به یاد بزی افتادند که زنگوله طلا به شاخ داشت. شادما شدند و با خودشون گفتند این بار پیرزن مراقب خواهد بود و هر قدر هم که پینکل دانا باشه، زنگوله هایی که به شاخ های بز است، پیرزن رو با خبر خواهد کرد. به همین خاطر وقتی که مثل قبل پادشاه به استبلهاش سرکشی کرد و دانایی برادرشون رو ستود، مردان جوان پادشاه رو از وجود بز شاخ تلا با خبر کردند. از این لحظه به بعد از اشتیاق داشتن چنین موجود فوق العاده یک شب هم خواب به چشمان پادشاه راه نیافت. اون از خطری که دزدیدن این بز در برداشت آگاه بود چون اینکه زن جادوگر برانگیخته شده بود. پادشاه ساعت ها وقت صرف نقشه کشیدن برای فریب دادن جادوگر کرد اما هیچ راه مناسبی پیدا نکرد. سرانجام همونطور که برادران پیش بینی پی به دنبال پینکل فرستاد. پادشا گفت شنیدم که جادوگر پیر جزیره بوزی با شاخهای طلا داره که از اونها زنگولهای آویزونه که گوش نوازترین موسیقی رو به وجود میارن من اون بوز رو میخوام اما به من بگو چطور میتونم اون رو به دست بیارم سلس کشورم رو به کسی خواهم داد که اون رو برام بیاره پینکل جواب داد من خودم اون رو خواهم آورد این بار برای پینکل نزدیک شدن به جزیره بدون اینکه دیده بشه آسونتر بود چون فانوس طلایی وجود نداشت که اشعهاش روی آب بیفته اما از طرف دیگه بز داخل کلبه خوابیده بود و درست پیش چشم پیرزن قرار داشت چطور باید این کار رو میکرد؟ پینکل تمام مسیر دریاچه رو فکر کرد و فکر کرد تا عاقبت فکری به سرش زد که به نظر میرسید عملی باشه اگرچه اون میدونست که انجام دادنش بسیار دشواره. به محض رسیدن به ساحل اولین کار اون یافتن یک قطعه چوب بود و وقتی اون رو پیدا کرد نزدیک به مخفی شد تا اینکه هوا کاملا تاریک شد و وقت خوابیدن جادوگر و دخترش رسید بعد پینکل به جلو خزید و چوب رو در زیر در که به طرف خارج باز میشد جاسازی کرد طوری که اگر کسی تلاش میکرد اون رو ببنده محکمتر میشد اون چند وقتی دختر برای قفل کردن در رفت همین اتفاق افتاد وقتی که جادوگر دید دخترش دستگیری در رو گرفته و میکنه پرسید چیکار میکنه میکنی؟ دختر جواب داد در عیب کرده بسته نمیشه. جای دوگر که خابالوت بود گفت خب بلش کن هیچکس ما نمیشه. دختر دستور اون رو انجام داد و به بستر رفت. خیلی زود صدای خور و پف و اونها بلند شد و پینکل فهمید که زمان اجرای نقشش رسیده. اون کفشاش رو در آورد و روی پنجه پا وارد کلبه شد. اون غذای مورد علاقه بز رو از جیب خودش درآورد و زیر بینی حیوان گرفت بعد در مدتی که حیوان اون رو میخورد اون هر یک از زنگولهای طلا رو با پشمی که با خودش آورده بود بست و گاهی هم دست از کار میکشید و گوش میداد که مبادا جادوگر بیدار بشه و اون رو تبدیل به پرنده یا جانور ترسناکی بکنه اما خوروپف اونها ادامه داشت و اون هرچه سریتر به کارش پرداخت وقتی که آخرین زنگول هم بسته شد، اون مشتی دیگه غذا از جیبش بیرون آورد و جلوی بز گرفت. بز فوراً بلند شد و پی پینکل رفت. پینکل آهسته در رو بست. به محض خروج از کلبه، بز رو به بغل گرفت و به جایی که قایقش رو بسته بود رفت. به محض رسیدن به وسط دریاچه، پینکل پشما رو از زنگول باز کرد و زنگول ها صدا کردند. صدای اونها جادوگر رو بیدار کرد و اون مثل قبل فریاد زد پینکل این تو هستی پینکل گفت بله مادر عزیز من هستم جادوگر پرسید آیا بز طلای من و دزدیدی پینکل جواب داد بله مادر عزیز دزدیدم جادوگر گفت آیا تو پس نیستی پینکل جواب داد بله همینطوره مادر عزیز جادوگر پیر خشمگین فریاد زد آه مواظب باش دیگه اینجا نیای چون دفعه بعد نمیتونی از دست من فرار کنی. اما پینکل فقط خندید و به پارو زدن ادامه داد. پادشاه به قدری از داشتن بوز شادمان شد که همیشه شب و روز اون رو کنار خودش نگه می‌داشت و همونطوری که قول داده بود پینکل مالک یک سوم کشور شد. همونطور که تصور میرفت برادران بیش از پیش خشمگین شدند. یکی از اونها به دیگری گفت: چطور میتونیم از شرش خلاص بشیم؟ سرانجام اونها بیاد شنل طلا افتادن اونها قهقهه زده و فریاد کشیدن باید خیلی دانا باشه تا بتونه اون رو بدزده دفعه بعد وقتی پادشاه برای سرکشی اسبهاش به اونجا اومد اونها شروع به تعریف از پینکل و زیرکی خال و قلاداش در فانوس دیدن فانوسو بوس کردن کاری که هیچ کس دیگه قادر به انجامش نبود اونها اضافه کردن اما حیف که وقتی اونجا بود، نتونست شنل طلا رو با خودش بیاره. پادشاه پرسید، شنل طلا دیگه چیه؟ مردان جوان با چنان کلمات و توصیف از شنل طلا حرف زدند که پادشاه اعلام کرد که تا زمانی که اون رو دورشونش نپیچه، روز خوشی نخواهد دید. اون اضافه کرد و مردی که اون رو برام بیاره، با دخترم عروسی خواهد کرد و وارث تاج و تخت من خواهد شد. اونا گفتند هیچ از جز پینکل نمیتونه اون رو بیاره. چون فکر نمی که جادوگر پس از دو بار به برادرشون اجازه بده که برای بارستوان فرار کنه. به این ترتیب پینکل رو به دنبال این کار فرستادن و اون با قلبی مصرور راهی شد. اون ساعتها صرف کشدن نقشه کرد تا اینکه نقشه ای رو که موفقیت آمیز به نظر میومد طراحی کرد. اون کیسه بزرگی رو داخل کت خودش جا داد و به دریا این بار مراقب بود تا در روشنای روز به جزیره برسه و قایقش رو به درختی بست در حالی که سرش رو پایین انداخته بود و خود رو شرمنده و متاسف نشون میداد وارد کلبه شد چشمای جادوگر با دیدن اون وحشیان درخشید و ازش پرسید این تو هستی پینکل پینکل جواب داد بله مادر عزیز خودم هستم جادوگر فریاد زد پس خیلی جرأت کردی که بعد از اون همه بلایی که بر سرم آوردی خودت رو در دسترس من قرار بدی. خب، این بار نمیتونی فرار کنی. جادوگر کارد بزرگی برداشت و شروع به تیز کردن اون کرد. پینکر در حالی که به زانو افتاده بود و سراسیم اطراف خودش رو نگاه میکرد فریاد زد: "آه مادر عزیز، منو ببخش." جادوگر گفت: "تو رو ببخشم ای دوست، فانوس و بزم کجا هستن؟ نه نه، فقط یک سرنوش در انتظار دزدان هست." جادوگر کارد رو در هوا تکون داد. به طوری که در زیر نور آتیش برق زد پینکل که این بار واقعا ترسیده بود گفت پس اگه قراره بمیرم بذار روش مردنم رو خودم انتخاب کنم خیلی گرستمه چون تمام روز چیزی نخوردم اگه میخوای کمی سم در فرنی بریز اما حداقل بذار قبل از مرگم یک شکم سیر غذا بخورم زن در مقابل گفت فکر بدی نیست مردن تو برای من اهمیت داره حالا به هر روشی که باشه و کاسه بزرگ فرنی کشید و گیاهان سمبی رو درش ریخت. و شروع به انجام دادن مقدمات کار کرد. پینکل شتابان محتویات کاسه رو به درون کیسه ریخت و صدای بلندی با قاشقش در ورد. انگار که آخرین لقمه رو می‌خوره. پینکر رو به جادوگر گفت: سمی یا غیر سمی؟ این فرنی عالی بود. من همه اون رو خوردم. قدری بیشتر به من بده. جادوگر در جواب گفت: خوب تو اشتهای خوبی داری. مرد جوان، چون این آخرین باریه که چون این غذایی میخوری، یک کاسه دیگه هم به تو میدم. جادوگر گیهان سمیش رو خرد کرد و با نیمی از فرنی در کاسه برای اون ریخت. بعد به کنار پنجره رفت تا گربش رو صدا بزنه. بینکل در یک لحظه دوباره فرنی رو در کیسه ریخت و لحظه ای بعد خودش رو کف زمین انداخت و به خود پیچ و تابی داد. انگار که از درد به خودش میپیچه و نالهایی بلند سر داد. یک دفعه ساکت شد و بی حرکت بر جای موند. جادوگر در حالی که بهش نگاه میکرد گفت: آه، فکر میکردم که کاسه دوم اون سم برات بسیار زیاد باشه. به تو هشدار داده بودم که اگر برگردی چه اتفاقی میافته. ای کاش همه دزدها مثل تو میمردن اما چرا این دختر تنبل من چوبی رو که فرستاده بودم بیاره نیورد؟ به‌زودی به قدری تاریک میشه که اون نمیتونه راه رو پیدا کنه. فکر کنم باید به دنبالش برم. این دختر همه دردسرها رو برای من ایجاد میکنه. اون به کنار در رفت تا ببینه آیا خبری از اومدن دخترش هست یا نه. اما اثری از اون به چشم نمیخورد و بارون شدیدی هم میبارید. جادوگر زیر لب گفت برای شنل من شب و روز مفهومی نداره. اگه با اون برم تا موقع برگشتن گلالود میشه. و همین دلیل شنل رو از دوش خودش برداشت و به دقت در گنجی اتاق آویزون کرد. بعد از اون کفش های چوبی خودش رو بپا کرد و به دنبال دخترش رفت با دور شدن صدای پای جادوگر، پینکل از جا پرید و شنر رو برداشت و با سرعت هرش تمامتر شروع به پا زدن کرد. هنوز چندان دور نشده بود که وزش باد شنر رو از هم باز کرد و درخشش اون روی آب منعکس شد. جادوگر که در حال ورود به جنگل بود، همون موقع چرخید و عشقهای طلایی رو دید. اون دخترش رو به کلی فراموش کرد و به سمت ساحل دوید و از اینکه برای سومین بار فریب خورده بود از خشم فریاد کشید این تو هستی پینکل پینکل گفت بله مادر عزیز خودم هستم جادوگر پرسید آیا شنر طلاییم رو برداشتی پینکل گفت بله مادر عزیز برداشتم جادوگر گفت آیا تو یک آدم پس نیستی پینکل گفت چرا همینطوره مادر عزیز و راستی که چالین بود اما در عین حال اون شنل رو به قصر پادشاه برد و در عوض با دختر پادشاه عروسی کرد مردم میگفتند که عروس با گرد شنل رو در جشن عروسی خودش به کنه اما پادشاه به قدری از داشتن اون شادمان بود که از شنل دل نمیکند و تا پایان عمرش هم از اون جدا نشد بعد از مرگ اون پینکل پادشاه شد امیدواریم که عادت بد دزدی رو کنار گذاشته و مردمش به خوبی فرمانروایی کرده باشه اون برادرانش رو تنبیه نکرد اما اونها رو در استبل نگه داشت تا تمام روز مشغول قرقر کردن باشن سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی